در سالان به دیوار زل شمالی تابلو بزرگی کار استاد آویزان بود توجهش را جلب کرد و پرسید کار کیست گفتم کار استاد ماکان است پرسید میشنستیدش؟ گفتم نه nah, همینطوری روی صندلی راحت نشست پاهایش را روی پایش انداخت من بوتی سیگار را پیش بردم یک سیگار برداشت من هم یکی برداشتم بلند شد که بریت زده آتش رو نزدیک صورت من ورد و گفت آدم است. پرسیدم کی؟ گفت همین نقاش پرسیدم چطور؟ گفت هیچ یکی نیست به او بگوید که مردک بنچین کار خودت را بکن تو به سیاست. پیش قهوه قوری و فنجان های قوری خوری و بطری لیکور و گیلاس های آن را روی میز کوچکی که صفحه ای از برنج قلم زده داشت گذاشت و رفت. موقعی که هنوز از اتاق خارج نشده بود گفتم دلم میخواست کمی با شما تنها صحبت کنم. گفت خب، چه بهتر چه فرمایشی داشتید؟ گفتم: راجب به دیگر صحبت نمی کنم. شما که قول موافقت دادید وقتی خواستید تشریف بروید می گونم که یادداشت کنید. گفت: بلکه من نخواهم بروم. گفتم: نه، تشیف می برید با خنده پرسید: اگر نرفتم چه؟ من هم با خنده جواب دادم اختیار دارید مملکت شهبانی دارد آن وقت حاسبان را صدا می زنم قاخ قاخ خندید بارک الله خوب می فرمودید پرسیدم تیم سار. از کارهایتان راضی هستید؟ گفت می خواستید راضی نباشم؟ پرسیدم در پاریس راحت نبودید؟ گفت البته که آنجا بهتر بود منطقه من از قدرت و مقام خوشم میآید. پرسیدم دیگر می خواستید چه باشید؟ رئیس شهبانی یعنی پس از شاه شما همه کاره اید؟ گفت اوضاع مملکت اینجوری نمی ماند می همه کاره باشم یعنی چطور میشود؟ گفت دنیا دارد رو به جنگ می رود اگر می دیدی در آلمان چطور دارند تحصیلات می کنند؟ گفتم به ما چه؟ گفت به محسن اینکه که و پوقی بلند شود یا رو دو پا دارد دو پای دیگر هم قرض می کند و شیخی را می بندد. پرسیدم پس چرا آنقدر به او خدمت می کنید؟ پرسید از کجا فهمیدید که دارم خدمت می کنم؟ گفتم می بینم که دارید مردم را عذیت می کنید. کیس که نداند شما دارید مردم را بیخودی خودی می گیرید؟ گفت مثلا کی را گرفتم؟ گفتم در این چند روز اخیر تا آنجا که من سراغ دارم اقلم 5 نفر را دستگیر کرده اید. گفت در یک مملکه ده میلیونی بگذار ده مازن نفر را بگیرند. چطور می شود؟ قیافه را در هم کشید و گفت شما از کجا خبر دارید؟ گفتم مادر یکی از اینها که گرفتار شده دو سه روز پیش به من متسب... متوسط شده بود و من تقاضای خداسی او را دارم پرسید اسمش چیست؟ گفتم محسن کمال اخ کرد دست انداق رو طرف لبش را گرفت و دو مرتبه مرتب را تا زیر چانه کشاند. آرام ملایم گفت خانون نکند اینجا هم دارید از همان کارهایی می‌کنید که در پاریس بدان مشغول بودید پرسیدم مگر من در پاریس چه کار می گفت چه می‌دونم، از همان روزنامه پخش کردن از همان کارهای بچه ها؟ گفتم پس ما را هم همین روزها ها هم می گیرند. گفت نه شما را توقیف نمی‌کنم. شما را میگذارم توی یک صندوق درش رو محرومو میکنم و با هواپیما میفرستمتان به فرنگستان گفتم بهتر نبود منو میفرستادید میفرستدید پیش پدرم گفت نه آنجا از دست من در میرفتید گفتم مگر شما هم باز خیال فرنگ رفتن دارید گفت شوخی به کنار، راستش را بخواهید، من هم موقتی در, در ایران هستم. زندگی در ایران با این طرز قذاقوازی با طب لطیف من سازگار نیست. فایده زندگی در این شهر گن چیست؟ اصلا من برای تفریح و خوشگذرانی ساخته شدم. آن مهمانی ها، آن نشینی ها، آن زن های آراسته، آن و دستگاه را آدم بگذارد و بیاید فوشهای رکیگ بشنود، این زندگی نیست پرسیدم مگر علا حضرت به شما هم فوش می گفت وقتی به رئیس فوش می نوبت من هم خواهد رسید گفتم شما که مجبور نیستید این حرف را بزنید و اینجا بمانید، پس مردم زیر دست شما چه بگوند؟ با عصبانیت گفت ای خانوم مردم مردم کن اینها منتالیته اینجور است از این بهتر چیزی نمیفهمند مثل اینکه قورباغه را از لجنزار بیاورید توی قو بخوابانید قورباغه توی لجن خوش است ما تاقتاشون نمیآورم اینها هیچ روزی در امان نیستم. هر روز ممکن است که خودم هم گرفتار بشوم خیال میکنید که تبعید پدر شما به کربلا کار آسانی بود منت من نمیخوام گردنتون بگذارم تو آن یک مش جاسوس بیشرف هستند و مرتب به دربار گزارش های دروغ می دهند. نکته عجیبی است که چرا هیچ کس متوجه این عیب بزرگ کار نیست. پانزده سال است که پایه و اساس کار این مملکت روی گزارش های دروغ می گردد. می که کارشان پیشرفت نمی کند. با وجود این باز هم ادامه می دهند. چطور می شود کار کرد؟ گفتم تازه خود هم روی همون گزارش های دروغ دارید کار میکنید. گفت تا اندازه همین طور است که میگویید. گفتم تا اندازه چرا؟ همین محسن کمال را روی همین گزارش های دروغ اید. گفت نه جان من. میانه درگان نقمایین نکن. اینطور نیست. پسرک داشته بیانیه پخش میکرده. گفتم آخر برای یک بیانیه که آدم را دستبند قپانی نمیزنند پرسید این را از کجا میدانی آن وقت کمی مکس کرد سیگار یا و گفت تلفنتان کجاست؟ گفتم توی هشتی بالا پرسید چه ساعتی است؟ ساعت ده و نیم گذشته است؟ کمی دیر است و الله همین الان دستور میدادم که محسن کمال را مرخص کنند فردا او را مرخص خواهم کرد اما بدانید که با این کار به خودم صدمه میزنم گفتم یقین دارم که کار نیکی میکنید و اجرش را از خدا خواهید گرفت گفت این حرفها را از خانم خانومجانتان یاد اید. مثل که یک عمر سر جانماز نماز نشستید. الان من قریب دو ماه است که در شهربانی دارم کار میکنم. بیش از یک سال دوام نخواهم آورد. تا اون وقت باید کارهایی که دارم انجام داده باشم. پرسیدم چه کارهایی؟ گفت خب کاری که زندگی من تعمیر شود و دیگر کسی نتواند به من صدمه بزند. پرسیدم فایدهش چیست؟ گفت آینده را باید در نظر بگیرید همینطور که گفتم دستگاه در حال زبال از هم پاشیدگی است در موقع جنگ دیگر مردم را به زور نمی شود نگه داشت خواهی نخواهی آزادی هایی به مردم خواهند داد و من اگر صدمه هایی به این دستگاه بزنم و بتوانم فرار کنم سنوایی برای آینده خودم درست خواهم کرد گفتم در این صورت حتما انگلیسی ها را هم با خودتان موافق کرده اید گفت حالا با آنها کاری ندارم اما هنگام مبادا آنها مجبورند خودشان به سراغ من بیایند کی از من بهتر من پرچمدار آزادی خواهم بود خندیدم و گفتم خوب دوز و که خودتان را جور کرده اید گفت همه اینطور هستند هر که به فکر خیش است شوخی به کنار. این را میخواهم جدی به شما بگویم امیدوارم تا وقت تصمیم قطعی خودتان را گرفته باشید من تا مدتی که در اروپا هستم یک زندگی شاهانه برای شما ترتیب میدهم وقتی این اوضا به هم خورد و به ایران برگشتم آن وقت اگر موفق شدم شما همهكاره هستید تمام قدرت و ثروتی که روز به روز رو به نیست در اختیار شما خواهد بود راه شما به تمام مخافل و مجامع اعیان اروپا باز است شاهان و رؤسای جمهور از شما پذیرایی خواهند کرد و دست شما را خواهند بوسید اگر هم موفق نشدم تا روزی که از ایران بروم آنقدر سرمایه می توانم دوخته کنم که شما اگر یک عمر هم در اروپا قرق تجمل باشید باز هم کمبود احساس نکنید این در باغ سبز نیست که به شما نشان می دهم این را می گویم تا بدانید که شما با من زندگی مرفحی خواهید داشت خب دیر وقت است از خانم انتان خدافزی کنید امیدوارم که به زودی شما را ببینم هرچه زودتر به من جواب بدهید